مصنوی معنوی مولوی برنامه سی و دوم دو قسم غلام در صدق و وفای یاور خود از تحارت زن خود گفتنه <تصفيق> <تصفيق> والله و بالله العظیم مالک الملکو و برحمان و رحیم آن خدایی که فرستادن بیا نی به حاجت بل به فضل و کبریا آن خداوندی که <ك> از خاک زلیل آفرید و شخصواران جلیل پاکشان کرد از مزاج خاکیان بگذرانید از تک افلاکیان برگرفت از نار و نور صاف ساخت وانگهو بر جمله انوار تاخت آن سنابرقی که بر ارواح تافت تا که آدم معرفت زانور یافت آن که از آدم رست و دست شیست چید پس خلیفش کرد آدم کان بدید نوح از آن گوهر که برخوردار بود در هوای بحر جان دربار بود جان ابراهیم از آن انوار زفت به هزار در شعله های نار رفت چون که اسماعیل در جویش فتاد پیش دشنه آبدارش سرنهاد جان داوود از شعاعش گرم شد آهنان در دست بافش نرم شد. چون سلیمان بود وسالش را رزی، دیو گشتش بنده فرمان و مطه. در قضا عقوب چون بنهاد سر، چشم روشن کرد از بوی پسر. یوسف مهرو چودید آن آفتاب شد چنان بیدار در تعبیر خواب چون اصا از دست موسی آب خرد ملکت فرعون را یک لقمه کرد نردبانش ایسی مریم چیا بر فراز گنبد چارم شتافت چون محمد یافتان ملک و نعیم قرس مه را کرد و در دم دنیم چون ابوبکر رایت توفیق شد با چنان شه صاحب و صدیق شد چون عمر شیدای آن معشوق شد حق و باطل را چو دل فاروق شد چون که عثمان آن ایان را عین گشت نور فایز بود و زنورین گشت چون زرویش مرتزا شد درفشان گشت او شیر خدا در مرج جان چون جنید از جند او دیدان مدد خود مقاماتش فزون شد از عدد با یزید اندر مزیدش راه دید نام قطب العارفین از حق شنی چون که کرخی کرخ او را شد هرست شد خلیفه عشق و ربانی نفس پور ادهم مرکبان سوراند شاد گشت او سلطان سلطانان داد وان شقیق از شق آن راه شگرف گشت او خورشید را و تیزتر صد هزاران پادشاهان نهان سرفرازانند زانسوی جهان نامشان از رشک حق پنهان بماند هر گدای نامشان را برنخواند حق آن نور و حق نورانیان کندران بهرند همچون ماهیان بهر جان و جان بهر گویمش نیست لایق نام نومی جویمش حق آن آنی که اینو آن از اوست مغزها نسبت بدو باشند پوست که صفات خاجتاش و یار من هست ست چندان که این گفتار من آنچه می دانم ز وصف آن ندیم باورت ناید چه گویم ای کریم شاه گفت اکنون از آن خود بگو چند گویی آن این و آن او تو چه داری و چه حاصل کرده ای از تک دریا چه دور آورده ای روز مرگین حس تو باطل شود نور جان داری که یار دل شود در لحد که چشم را خاکا هست آن چه گور را روشن کند. آن زمان که دست و پایت بردرد، پر هست تا جان برپرد. آن زمان که این جان حیوانی نماند، جان باقی بایدد بر جانشان. شرط من جابل حسن نیکردن است این حسن را سوی حضرت بردن است جوهر داری ذ انسان یا خری این ارزها که فنا شد چون بری این عرضهای نماز و روزه را چون که لا یبقا زمان این انتفا. نقل نتوان کرد مر اعراز را لیک از جوهر برندم راز را تا مبدل گشت جوهر زین ارز چون پرهیزی که زایل شد مرز گشت پرهیز ارز جوهر بجد شد دهان تلخ از پرهیز شد از زراعت خاک ها شد سنبله داروی مو کرد مو را سلسله آن نکاه زن عرض بود شد فنا جوهر فرزند حاصل شد زما جفت کردن با اشتر را ارز جوهر کره بزاییدن غرز هستان بستان نشاندن هم ارز گشت جوهر کشت بستان نک غرز هم دان کیمیا بردن بکار جوهر زن کیمیا گر شد بیار. سیقلی کردن عرز باشد شه زین عرز جوهر همه زاید صفا. پس مگو که من عمل ها کردم. دخل آن اعراز را بنما ما مرم. این صفت کردن عرز باشد، خموش سایه بز را پی قربان نکش. گفت شاه ها بی قنوت عقل نیست گر تو فرمای عرض را نقل نیست پادشاه ها جز که یاس بنده نیست گر عرض کن رفت باز آینده نیست گر نبودی مر را نقل و حشر فیل بودی باطل و اقبال فشر این ارزها نقل شد لون دگر. هشر هر فانی بود کون دگر. نقل هر چیز بود هم لایقش. لایق گله بود هم سایقش. وقت محشر، هر عرز را صورت است، صورت هر یک عرز را نوبت است. بنگرن در خود، نه تو بودی عرز، جنبش جفتی و جفتی با عرز. بنگرن در خانه و کاشانه ها، در مهندس بود چون افسانه ها. آن فلان خانه که ما دیدیم خوش، بود موزون صفه و سقف و درش. از مهندس آن عرض و اندشه ها آلت آورد و ستون از بیشه ها. چیست اصل و مایه هر پیشه؟ جز خیال و جز عرض و جمله اجزای جهان را بی غرض در نگر حاصل نشد جز از ارز اول فکر آخر آمد در عمل بنیت عالم چنان دان در ازال میوه در فکر دل اول بود در عمل ظاهر و آخر می شود چون عمل کردی شجر بنشاندی اندر آخر حرف اول خواندی گرچه شاخ و برگ و بیخش اول است آن همه از بحر میوه مرسل است پس سری که مغز آن افلاک بود اندر آخر خواجه لولاک بود نقل اعراز است این بحث و مقال نقل اعراز است این شیر و شغال جمله عالم خود ارز بودند تا اندر این معنی بیامد حل عطا این ارز از چه زاید؟ از سوور و این سوور هم از چه زاید از فکر این جهان یک فکرت است از عقل کل عقل چون شاه است و صورت ها رسال عالم اول جهان امتحان عالم ثانی جزای این و آن چاکرت شاه ها جنایت می کند. آن عرز زنجیر و زندان می شود. بنده چون خدمت شایسته کرد، آن عرز نه خلعت شد در نبرد. این ارز با جوهران بیزست و تیر، این از آن و آن از این زاید و سیر. گفت شاهنشاه چونین گیر المراد این عرضهای تو یک جوهر نزاد گفت مخفی داشت استان را خرد تا بود غیب این جهان نیک و بد زان که گر پیدا شدی اشکال فکر کافر و مؤمن نگفتی جز که ذکر پس ایان بودی نه غیبه شاه این نقش دین و کافر بودی بر جبین کی در این عالم بط و بطگر بودی چون کسی را زهره تسخر بودی پس قیامت بودی این دنیای ما در قیامت کی کند جرم و خطا گفت شه پوشید حق پاداش بد لیک از آمان از خاسان خود گر به دام من یک امیر از امیران خفیه دارم نز وزیر حق به من بنمود پس پاداش کار و سورهای عملها صد هزار تو نشانه ده که من دانم تمام ماه را بر من نمی پوشد غمام گفت پس از گفت من مقصود چیست چون تو میدانی دانی که آنچه بود چیست گفت شه حکمت در اظهار جهان آنکه دانسته برون آید عیان آنچه چه میدانست تا پیدا نکرد، بر جهان ننهاد رنج تلق و درد. یک زمان بیکار نتوانی نشست، تا بدی یا نیکی از تو نجست. این تقاضاهای کار از بهره آن، شد معکل تا شود سرت آیان، پس کلابه تن کجا ساکن شود، چون سر رشته زمیرش می کشد. تاسه تو شد نشان آن کشش، بر تو بیکاری بود چون جان کنش. این جهان و آن جهان زاید ابد. هر سبب مادر، اثر از وی، ولد. چون اثر زایی دان هم شد سبب تا بزاید او اثرهای عجب این سبب ها نسل بر نسل است لیک دیده باید منور نیک نیک شاه با او در سخن اینجا رسید تا بدید از وی نشانه یا ندید گر بدیدان شاه جویا دور نیست لیک ما را ذکر آن دستور نیست گرمابه زغرمه بیامادان غلام سویخی شش شاه و همام گفت سحن لگ نعیم دایم و بس لطیفی و ظریف و خوبرو ای دریغا گر نبودی در تو آن که همه گوید برای تو فلان شاد گشتی، هر که رویت دیدی، دیدنت ملک جهان ارزیدی. گفت رمز زان بگو ای پادشاه، کس برای من بگفتان دین تباه. گفت اول وصف دروید کرد، کاشکارات و دوایی خفیت در. خب سیارش را چو از شهر گوش کرد در زمان در یاوی خشمش جوش کرد کف برآوردان غلام و سرخ گشت تا که موج حجب او از حد گذشت کوز اول دم که با من یار بود همچو سگ در قد بس گهخار خار بود چون دمادم کرد حجوش چون جرس، دست لب زد شهنشاهش که بس. گفت دانستم ترا از وی بدان، از تو جان گندست و از یارت دهان. پس نشین گنده گند جان از دور تو، تا امیر امیرو باشد و معمور تو. در حدیث آمد که تسبیح از ریا همچو سبزه گول خندان ای کیا پس بدان که صورت خوب و نکو با خسال بد نیارزد یک تسو ور بود صورت حقیر و ناپذیر چون بود خلقش نکو در پاش میر صورت ظاهر فنا گردد بدان عالم معنی بماند جاودان چند بازی عشق با نقش سبو بگذر از نقش سبو رو آب جو صورتش دیدی زمانی غافلی از صدف دوری گزین، گر عاقلی این صدف های قوالب در جهان گرچه جمله زندند از بحر جان لیکن در هر صدف نبود گوهر چشم بکشا در دل هر یک نگر کان چه دارد و این چه دارد میگوزین زان که کمیاب استان در سمین گر به صورت می روی کوهی به شکل در بزرگی هست صد چندان که لال. هم به صورت دست و پا و پشم تو هست صد چندان که نقش چشم تو. لیک پوشیده نباشد بر تو این که از همه اعضا دو چشم آمد گزین. از یک اندیشه که آید در درون صد جهان گردد به یک دم سرنگون جسم سلطان گر صورت یک بود صد هزاران لشکرش در دود باز شکل و صورت شاه صفی هست محکوم یکی فکر خفی خلق بی پایان زیگ اندیشه بین، گشته چون سیلی روانه بر زمین. هستان اندیشه پیش خلق خورد، لیک چون سیلی جهان را خورد و برد. پس چون بینی که از اندیشه قایم هستند در جهان هر پیشه ای، خانه ها و قصر ها و ها. ها و دشت ها و ها. هم زمین و بهرو هم مهر و فلک زنده از وی همچو کز دریا سمک پس چرا از ابلهی پیش تو کور تن سلیمان است و اندیشه چمور می نماید پیش چشمت که بزرگ هست اندیشه چموشو و که گرگ آلمان در چشم تو حول و عظیم زبر و رد و چرخ داری لرز و بیم و جهان فکرتی ای کمز خر ای من و غافل چو سنگ بی خبر زان که نقشی و از خرد بی به ری آدمی خو نیستی خرکر ری. سایه را تو شخص می ز جل شخص از آن شد نزد تو بازی و سل باش تا روزی که آن فکر و خیال برگشاید به هجاب پر رو بال کوها بینی شده چون پشم نرم نیست گشته این زمین سرد و گرم نه سما بینی نه وجود جز خدای واحد حی و دود یک فسانه راست آمد یاد دروغ تا دهت مر راستی ها را فرود برنامههای های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج دهیه و اجرا کردند.